به نام خدای یگانه مهربان سلام میگن افثان و قصه خوابهای رنگی نادمین تأثیر افسانه‌ها و قصه ها بسیار قویه و این ویژگی و جازبی افسانه هاست که من و تو رو دربر میگیره و ما رو با خودش به دنیایی پر رمز و راز میبره در افسانه‌های ملل میشه درباره اندیشه و گفتار مردم اطلاعاتی رو کسب کرد و دریافت که چگونه میاندیشیدند و با رویدادهای تلخ و شیرین چگونه روبرو میشدند افثانهی رو که این نهر می کچل نام داره که افسانه از سرزمین سربستان کشور سربستان سالیان طولانی یعنی در حدود 500 سال در اشغال حکومت عثمانی بود و در همین سالها بود که مردم سربستان نارضایتی ها و درد دل هاشون رو به صورت افسانه و داستان چه از زبان انسان و چه از زبان حیوانات نهر می کردن. افسانه سربستانی کشل رو دوک استفانویچ زبانشناس و تاریخدان سرب که در اواخر قرن هجدهم و نیمی از قرن نوزدهم زندگی کرد، وری کرده. ترجمه این افسانه رو از زبان روسی خانم مهین رادپور بر عهده داشتند. و ما افسانه کچل از سرزمین سربستان در های بسیار دور در کشور سربستان پادشاهی بود که سه تا دختر داشت. دو دختر بزرگتر با های خارجی ازدواج کرده بودند و زندگی خوبی داشتن. اما پادشاه همیشه از دوری دخترانش ناراحت بود و قصه می‌خورد. بنابراین تصمیم گرفت دختر کوچکتر رو که از همه مهربونتر و زیباتر بود به مردی در کشور خودش شوهر بده. در بین خدمتکاران دربار مرد جوونی بود که هم زشت بود و هم کچل و در باغ قصد کار میکرد. کچل اونقدر بازوغ و صلیقه بود که انواع گلهای زیبا رو در هر فصلی پرورش میداد و باغ رو به صورت زیبایی میاراست. کچل همیشه در حال کار کردن بود و هیچکس باور نمیکرد که این همه گل رو فقط یه نفر میکاره و آب میده و مواظبت میکنه شاهزاده خانم هم اغلب از پنجره اتاقش که به باغ باز میشد باغ رو تماشا میکرد و با خودش میگفت آخ چه باغ زیبایی چقدر قشنگ گلکاری شده آخه چطور این باغ بون با این قد کوتاه و اندام ریزش میتونه همه جای باغ رو ببینه و به گلها رسیدگی کنه شاهزاده خانم توی این فکر بود که یه روزی بالاخره از کچل بپرسه که تو چطور میتونی به این همه گل و گیاه برسی. و بالاخره اون روز فرار رسید و شاهزاده خانم در حالی که از پنجره اتاقش مشغول نگاه کردن به باغ بود کچل رو دید که گلدونهای گل رو جابجا جا میکنه و هیچ توجهی به اطرافش نداره. شاهزاده خانم با صدای بلند گفت: آهای کچل با تو هم کچل به آرومی گلدونی رو بر زمین گذاشت و نگاهی به اطراف انداخت و وقتی متوجه شاهزاده خانم شد تعظیم کرد و با احترام پرسید شاهزاده خانم منو صدا کردین؟ شاهزاده خانم لبخندی زد و گفت: آره تو رو صدا کردم. راستش راستشو به من بگی. من میخوام بدونم تو دستنها چه حقه این که این باغ همیشه سبز و خورمه و این گل اینقدر شادا ها؟ کچل گل قرمزی رو چید و با احترام به طرف شاهزاده خانم دراز کرد و گفت شاهزاده خانم عزیز اگه میخواید رمز سرسبزی این باغ و شادابی این گل رو بدونین باید سبزوتر از خواب بیدارشین و فقط تماشا کنین شاهزاده خانم در حالی که قرمز رو در دستاش به این طرف و اون طرف تکون میداد با خوشحالی گفت مطمئن باش مطمئن باش فردا صبح زود بیدار میشم بعد پنجره اتاقش رو بست و پرده رو کشید فرداي اون روز شاهزاده خانم صبح زود از خواب بیدار شد و با عجله یک راست به طرف پنجره اتاقش رفت و از پشت شیشه پنجره مشغول تماشای باغ شد. در این لحظه یهو چشاش به چهار خدمتکار افتاد که یکی از اونها دهنه اسب زیبایی رو به دست گرفته بود و بر روی اسب لباس مردونی گرون قیمتی با شمشیری گوهر نشان قرار داشت. کچل لباس رو پوشید و یکباره به صورت جوانی زیبا در اومد اونقدر زیبا که نگو و نپوز. بعد کچل سوار بر اسب شد و شروع به گردش در اطراف باغ کرد و چهار خدمتکار به دستور او مشغول تمیز کردن باغ و آب دادن به گلها و درختان شدن شاهزاده خانم که از شگفتی زبونش بند اومده بود تاقد نیاورد و بیهوش بر زمین افتاد. خدمتکارها و ندیمهها هر جوری بود خانم رو به هوش آوردن پادشاه که سخت نگران حال دخترش بود مرتب به ها و خدمتکارها قر میزد که معلوم نیست شما چه گوری رفته بودین که این بلا سر دخترم اومد و بعد اونا رو تهدید کرد اگه اگه فقط یه از سر دخترم کم بشه دستور میدم جلاد گردن همهتونو بزنه شاهزاد خانم آه و ناله میکرد و زیر لب چیزایی میگفت که مفهوم نبود پادشاه به دخترش نزدیک شد و پرسید دخترم دخترم چی شده؟ کی و چی باعث شده که تو از هوش بری؟ چیزی دیدی؟ کسی چیزی بهت گفته بود؟ به من بگو دخترم شاهزاده خانم دست پدرش رو گرفت و آروم نالید آه... کچل؟ آه، کچل کجاست؟ آه، سرم گیچ میره سرم پادشا با شنیدن اسم کچل براشفت و فریاد زد زر... کچل کچل رو زود بیارین هرچی هست زیر سر اون مردک احمق کچله دختر با شنیدن حرف پادشا به توندی گفت نه نه نه نه نه نه نه پدر گل میخوام میخوام یه گل رو بو کنم شاید حالا بهتر شه کاری به کچل ندارم فقط فقط خواستم آخ سرم برام گل بیاره بعد رو کرد به یکی از ندیم ها و گفت برو برو برام از توی یه گل خوش بیار ندیمه هم فوری رفت و چند دقیقه بعد با یه شاخ گل قرمز خوشبو اومد کنار شاهزاده خانم پادشاه دخترش رو نوازش کرد و ازش خواست استراحت کنه تا حالش بهتر بشه دخترم پذیرفت و همه اونو تنها گذاشتن تا حسابی استراحت کنه چند روزی گذشت شاهزاده خانم فقط به کچل فکر میکرد و ساعتها به باغ چشم میدوخت و منتظر اومدن کچل میدشست. در این روزها هر روز جوانان شجاع و زیبایی به خواستگاری شاهزاده خانم میومدن و پادشاه اصرار داشت که دخترش به یکی از این جوانا جواب مثبت بده و به خونه بخت بره. اما دختر به هیچ کدوم از خواستگارانش روی خوش نشون نمیداد و فقط به کچل فکر میکرد پادشاه که از این رفتار دخترش تعجب کرده بود نزد دخترش رفت و گفت: دخترم برای من خیلی عجیبه که توی این همه جوان حتی یکی از اونها به دل تو خوش نیمده جوانای شجاع زیبا و با کمالیان تازه؟ از خونواده های سرشناس و سروتمندین. چرا یکی از اونا رو انتخاب نمی کنی؟ دختر سکوت کرد و سرش رو پایین انداخت. پادشاه که سکوت دخترش رو دید با لحن آروم و مهربونی از اون پرسید. دخترم، حرف دلت رو به من بگو کدوم یکی از این جوان ها رو انتخاب می دختر باز هم سکوت کرد. پادشاه آهی کشید و برسید کس دیگه ای رو برای همسری انتخاب کردی؟ دختر سرش رو بالا آورد و زیر لب گفت کچل کچل پادشاه که این حرف رو شنید شروع به خندیدن کرد و گفت عجب عجب چه شوخی با دخترم و بعد دوباره پرسید خب حالا بگو ببینم چه کسی رو انتخاب کردی دختر باز هم زیر لب گفت کچل آه کچل و بادشاه با پرسید کچل شوخی میکنی دخترم <تصفح> الان که وقت شوخی کردن نیست دختر کلام پدرش رو قطع کرد و به گفت نه پدر آه. من اصلا شوخی نمی کنم. من کچل رو برای همسری خودم انخاب کردم پادشاه در حالی که سعیم کرد خشم خودش رو بروزنه گفت دختر تو چجوری میخوای زن یکی از خدمتکارای قصف بشی؟ اونم زن این مرد کچل و زشت آه. تو میخوای با این کار آبروی ما رو پیش همه ببری؟ و بعد از شدت ناراحتی پادشاه بلند شد که از اتاق دخترش بیرون بره که دختر با صدای بلند گفت پدر پدر یا کچل یا هیچکس کس کچل پادشاه که دید دخترش به هیچ وجه حاضر نیست همسری بجز کچل انتخاب کنه چاره اندیشی پادشاه دستور داد که به تن دخترش لباس روستایی بپوشونن وقت زمینی بیرون از شهر به اون بدن و اون زندگی تازهی رو با کچل شروع کنه کچل در اون زمین درختان و گلهای بسیاری کاشت و اونجا را به صورت باغ زیبایی در آورد و بدین ترتیب اونا زندگی ساده و خوبی رو با هم شروع کردن. کچل هر روز سبزیهایی رو که در مزرعه کاشته بود به شهر می برد و میفروخت و با پول اون چیزهایی رو که لازم داشتن از شهر می خرید. اما کافی بود که کچل سوتی بزنه تا اسب زیبا با لباس گرون قیمت و شمشیر گوهرنشان در مقابلش حاضر بشه. و اون همین که لباس رو می پوشید چنان زیبا و برازنده می شد که نگو و نپوز و لنگش توی دنیا پیدا می شود. مدتی گذشت تا اینکه از دو طرف دشمنان به این کشور یعنی کشوری که محل حکومت پادشاه بود حمله برده پادشاه نمیدونست سربازانش رو به کدوم طرف بفرسته. پادشاه که سخت نگران حکومت و کشورش بود با خودش گفت خدا رو شکر خدا رو شکر دوتا از دختران رو به شاهزادگانی شوهر دادم که صاحب قدرت و توانن من میتونم به کمک اونها اعتماد کنم. پادشاه بعد آهی کشید و ادامه داد، آه ولی، ولی داماد سفا من، جل. نمیتونم ازش هیچ انتظاری داشته باشم، اون یه باغبون و سبزی فروش بیشتر نیست، بیچاره دخترم، آشق چه کسی شده اطرافیان پادشاه به پادشاه خبر دادند که دشمنان در حال حمله به اطراف کشورند و باید هر جوری شده جلوی ورود اونها رو به کشور بگیریم پادشاه که سخت نگران بود دستور داد تا هرچه وسایلی جنگی دارن آماده کنند و بعد به جارچیا فرمان داد که در گوش و کنار کشور جار بزنن که هر کس که میتونه شمشیر به دست بگیره خودشو معرفی کنه هر روز دسته های بیشماری به طرف جپه های جنگ به می افتدن. اما خبری از پیروزی نبود و بنا به خبرهایی که میرسید تلفات سنگینی به اونها وارد می‌شد، به ناچار خود پادشاه آزمه جبهه شد که عازم جپه شد به دنبال اون پیر و جوان براه افتاده در بین اونها کچل هم سوار بر اسب پیری دیده میشد. همه مردم کچل رو مسخره میکردند و با اشاره دست اونو به این اون نشون میدادند که میبینی، اون کچل رو؟ جپه جان یعنی کچلو کم داشت. با حضور کچل تو جپه حتماً دیگه پیروزی باها نا انقد کچل رو مورد تمسخر قرار دادم که نزدیک بود کچل از راهی که اومده بود برگرده عاقبت به نزدیکی جنگ رسیدن سه روز در آرامش گذشت از صبح روز چهارم جنگ در گرفت کچل از چادر بیرون اومد سوتی زد و یهو عصب زیبا که بدنی چون مار نرم و باریک داشت تازه شد کچل لباس گرون قیمت رو پوشید و شمشیرش رو به دست گرفت و وارد میدون چنگ شد کچل که وارد میدون شد اوضا تغییر کرد کچل در حالی که شمشیرش رو دور سرش میچرخوند به سمت نیروی دشمن تاخت. سربازان دشمن که انتظار چنین حمله‌ای رو نداشتن دست شدن کچل پیش میدفت و با هر حرکت شمشیر یه نفر به زمین میافتاد نمیشد گفت که سربازان دشمن از ضربه شمشیر کچل کشته میشن یا از ضربایی که اسب کچل با سومش به این طرفون طرف, طرف میزد دشمنان که این وضع رو دیدن بعد از مدت کوتاهی پا به فرار گذاشتن و از ترس پشت سرشون را هم نگاه نکردن بعد از اینکه سربازان دشمن پا به فرار گذاشتن خبر به پادشاه رسید که جوون شجاعی با فداکاری جلوی دشمن رفته و همه اونا رو فراری داده. پادشاه دستور داد تا اون جوون رو به قصد بیارن و قول داد که هرچی بخواد عنوان پاداش به اون بده. هنوز به دنبال جوون شجا و فداکار نرفته بودند که دسته از راه رسیدن و به عرض پادشاه رسوندن که این جوون شجا و فداکار کسی نیست جز کچل پادشاه که سخت تعجب کرده بود از اطرافیانش پرسید اه شما مطمئنین که اون جوون همون کچل خودمونه؟ وقتی اطرافیان اونو مطمئن کردند پادشاه زیر لب با تحجب گفت یعنی ممکنه این پیروزی و این فداکاری کار کچل باشه داماد ناخاسته من نمیدونم چی کچل بعد برای اطمینان بیشتر دستور داد اگه این جوان شجاع کچله زود برید اونو بیارید قصر من زود هنوز اطرافیان پادشاه برای آوردن کچل به راه نیفتاده بودن که صدای کچل از گوشهی به گوش رسید بذارید کار دشمن رو یکسره کنم موقع برگشتن من در رکاب پادشاه خواهم بود پادشاه. با شنیدن صدای کچل به طرف اون رفت و کچل رو در آغوش کشید و در این لحظه خبر رسید که دشمن درخواست کرده که قرارداد سول ببنده و پادشاه هم که نمیخواست بیشتر از این درگیر فوراً فورا قرارداد صلح رو پذیرفت و سربازها خیمه ها رو برچیدن و به طرف پایتخت افتادند کچل هم چادر و باربونش رو جمع کرد و اون رو روی اسب پیرش گذاشت. اون وقت سوتی زد. یهو اسب زیبا با لباس و شمشیر حاضر شد و لباس رو پوشید. شمشیر گوهرنشون رو به کمر بست و سوار بر اسب به طرف قصر پادشاه برافت. در اونجا بود که همه مردم دیدن اون کچل باغبون چه جوون زیبا و شجاعیه. پادشا از خوشحالی اشک شوق ریخت و همه با شادی به قصد برگشتن پادشا که این همه شجاعت رو از جوان دید کچل رو به جانشینی خودش انتخاب کرد و سالهای سال همه در آرامش زندگی کرد چی که براتون نقل کردم افسانه بود از سرزمین سربستان ای برادر قصه چون پیمانه است معنی در وی بسان دانه است دانه معنا بگیرد مرد عقل ننگرد پیمانه را گرگشت نه این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالحپور اجرا مهران دوستی صداوردار داریوش گودرزی و تیگی کننده زهرا عبدالله زاده تا افثانه دیگر بدروب.